ری هجر بالله بسم الله الرحمن الرحیم که الكتاب و قرآن ربما یودد الذین کفرون و كانوا مسلمين بنام الله که بخشاگان با رحمت است الف لان، را اینها آیات کتاب و قرآن بیان کننده حقایق است هنگامی که دستاورد اعمال هرکس داده شود چه بسا کافران آرزو کنند ای کاش تسلیم حق شده بودند رهایشان کن تا بخورند و در لذت لذتهای دنیوی غرق باشند و آرزوهای دست نیافتنی سرگرمشان سازند به زودی حقایق را خواهند فهمید و ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر آنکه پایان کارشان در کتابی مشخص شده بود هیچ جماعتی از اجلی که برایشان تعیین شده نزود در و نه تأخیر کنند و حقیقت گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده بی تو دیوانه اگر راست میگویی، چرا فرشتگان را به ما نشان نمیدهی؟ ما فرشتگان را جز به حق نمیفرستیم، اما وقتی بیایند دیگر به آنها مهلتی داده نمیشود. این ماییم که قرآن را نازل کردیم و خود نیز حفاظتش میکنیم. ما رسولان خود را پیش از تو به سوی اقوام گذشته فرستادیم و بدان که هیچ پیامبری نزد آنها نیامد، مگر آن که او را تمسخر کردند ما اینچنین قرآن را در اعماق وجود مجرمان جاری می کنیم به آن ایمان نمی آورند و این راه رسم اقوام پیشی نیز بوده است حتی اگر دری از درهای آسمان را به باز کنیم و از آن اروچ کنند باز می گویند ما را چشم بندی کردند بلکه همه ما جادو شده ایم. ما مجموعه ستارگانی را در آسمان قرار دادیم و آنها را در نظر بینندگان زیبا و بگر ساختیم و آنها را از هر شیطان مطرودی حفظ نمودیم جزان که خواسته باشد حقایق آسمانی را استراغ سم کنند که در این صورت شهابهای روشن او را تعقیب میکنند و آنها را از چیزی که لیاقتش را ندارند دور خواهند کرد و زمین را وسعت دادیم و کوه را در آن راشتم و به طور دقیق و سنجیده از هر چیزی در آن روغان و روزی و معیشت شما و کسانی را که شما روزی دهنده آنها نیستید در آن قرار دادیم و هیچ چیزی وجود ندارد مگر آن که خزائن آن نزد ماست است مجموعی از مقدرات توانایی ها روزی عجل، و ما آنها را فقط به اندازه معین نازل می کنیم. و ما بادهایی را که باعث باروری گیاهان و ابرها می فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم تا شما را به واسطه آن سیراب کنیم در حالی که شما توانایی حفظ و نگهداری آن را ندارید این ماییم که زنده می کنیم و می می دانیم و ما وارث هستیم و این نقطه را هم به گذشتگان و هم به آیندگان گوش زد کرده و از دستاورد همه آگاهی، بدان که پروردگارت دوباره آنها را محشور خواهد کرد زیرا او حکیم و آگاه است و ما انسان را از گل خشک و لجن بدبو آفریدیم و جن را پیش از این از آتش گرم و سوزان خلق کردیم و یادار هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت میخواهم بشری از گل خشک و لجن بدبو بیافرینم و چون آفرینش او را تمام کردم و از روح خود درودمیدم به فرشتگان گفتم همه او را سجده کنید همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که اوا کرد از سجده کنندگان باشد و خداوند گفت ای ابلیس چرا تو همراه دیگران آدم را سجده نکردی؟ گفت نمیخواهم بشری را سجده کنم که او را از گل خشک و لجن بدبو آفریده ای. خدا گفت از این مقام و مرتبت بیرون رو که از درگاه ما رانده شده ای و تا ابد نفرین بر تو باد گفت پروردگارا تا روز قیامت محلت هم ده. خدا گفت تو از مهلت یافتگانی البته تا روزی که وقتش معلوم است گفت پروردگارا به خاطر اینکه مرا فریب دادی در روی زمین زشتی ها را در نظرشان زیبا جل بگر کنم و همه آنها را گمراه سازم مگر آن بندگانی که رهایی یافتهاند خدا گفت این راه راست و درستی است که به من میرسد تو بر بندگان من هیچ سلطه‌ای نداری مگر بر کسان گمراهی که از تو تبعیت کنند که در این صورت وعدگاه همشان جهنم خواهد بود جهنمی که هفت دروازه دارد و برای هر گروهی دروازه‌ای مشخص است این المتقین و اما کسانی که حرمت عوامر خدا را نگاه دارند در باغای بهشت در کنار چشم سارها هستند و آنها گویند در کمال سلامت و امنیت داخل این بهشت ها شدید و هر گونه تعلقات باطل را از دل‌هایشان می‌زدایید زیرا همه برادر یکدیگرند و بر تختها روبروی هم مینشینند. هرگز خستگی و افسردگی سراغ آنها نمیآید و از این بهشت زیبا بیرونشان نمیکنند. بندگانم را آگاه کن تا بدانند من آمرزنده و بسیار باگذشتم همچنان که مجازات من مجازات دردناکی است و مردم را از مهمانانی که بر ابراهیم وارد شدند آگاه کنم هنگامی که رسولان به نزدش آمدند و سلام کردند ابراهیم گفت ما از شما می‌درزیم گفتند از ما نترس ما آمده‌ایم تا تو را به تولد پسری آگاه بشارت دهیم گفت، آمده تا مرا به فرزندی بشارت دهید در حالی که من پیر و سال خوردم؟ بر چه اساسی این بشارت را می دهید؟ گفتند، این بشارت را به حق می دهید، از ناامیدان نباش. گفت، هیچ کس از رحمت پروردگارش ناامید نمی شود مگر آن از گمراهان باشد. گفت، ای رسولان، به چه کار آمده اید؟ گفتند، ما برای عذاب قوم مجرمان آمده اید. به جز خانواده لوت که موظفیم همه آنها را نجات دهیم البته به غیر از همسرش زیرا مقرر کرده ایم او از جمله بازماندگان در شهر باشد و چون رسولان نزد خانواده لوت آمدند لوت گفت شما قومی ناشناختید گفتند آنچرا که مردم در آن شک می کردند آورده ایم و ما با حق بر تو آمده ایم و راست می گوییم پس نیمه خانوادت را بیرون ببر و تو در آنها حرکت کن و نباید هیچ کس از شما پشت سرش را نگاه کند به هر جا که فرمانتان دادند حرکت کنید و به او حقیقت ماجرا را گفتیم که تا ریشه همه اینها کنده خواهد شد و اهل شهر شادمان به سوی خانه لوت آمدند لوت گفت اینها مهمانان من هستند آبروی روی مرا مریزید از خدا بترسید و سرفکنده هم مکنید. گفتند مگر تو را از ارتباط با جهانیان نهی نکرده بودی. لوت گفت دختران من حاضرند اگر میخواهید کار صحیحی انجام دهید با آنها ازدواج کنید ای پیامبر، به جان تو قسم که آنها در مستیشان حیرانند چون صبح تو کرد، کرد سیهی مرگبار همشان را فرا گرفت یارشان را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ بر آنها باریدیم و در همه اینها عبرتهایی برای هوشیاران است ویرانهای آن شهر اکنون بر سر راهی به جا مانده است و در آن عبرتی برای اهل ایمان است اصحاب عیکه قطعا قومی ظالم بودند از آنها انتقام گرفتیم و اکنون ویرانهای قوم لوط و اصحاب عیکه بر سر راهی آشکار است و اصحاب هیچ قوم سمود پیامبران را تخذیب کردند ما آیات نجات بخشمان را به آنها دادیم اما آنها از آن روی برگرداندند و رفتند خانههایی از کوه تراشیدند تا در امنیت باشند اما صوبگاهان سیهی مرگبار همشان را فرا گرفت و دستاوردشان نتوانست نجاتشان دهد بدانید که ما آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست فقط بر اساس حق خلق کردیم و بدانید که قیامت است پس از همه به زیبایی و بزرگوارانه درگذر. این ربک هو الخلاق العلیم قات ك س بین وانیوانقرآ العظیم بهناکه پروند خلاقی آگاه است ما به تو سوره همد و قرآن بزرگی داده ایم. هرگز چشمد به مطایی که به برخی از اهل دنیا دادهم نباشد و غصه آنها را مخور و برای اهل ایمان، نهایت احترام را قائل شد و بگو من هشدار دهنده روشنگرم ما بر منکران حقیقت عذاب میفرستیم که بر تجزیه کنندگان قرآن عذاب فرستادیم همانهایی که قرآن را تقسیم کردند و آنچه به سودشان بود برداشتند و آنچه مخالف مخالط هوای نفسشان بود ترک کردند به پروردگارت قسمد که همه آنها را بازخاست خواهیم کرد و این بازخاست به خاطر عملکردشان خواهد بود. آنچه که بدان معمول شده ای روشن و قاطع بگو و از مشرکان روی بگردان. ما را در برابر آنها که حقایق را تمسخر می کنند که فقیت می کنی. کسانی که با الله خدای دیگری قائل می شوند به زودی از حقیقت آگاه خواهند شد. ما میدانیم که تو از آنچه می‌گویند سینت به درد آمده است پس پروردگارت را ستایش کن و از کنندگان باش آنقدر پروردگارت را عبادت کن تا یقین تو را فراگیرد فسبح بحمد و من الساجدی. وأعوذ بربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم از این